آیت هشتمه سوری بقره یعنی سوری بقره تقریبا صفحه دومی قران شریف است سوری بقره دومی سوره است اول سوری فاتحه است بازی سوره البقره است و آیت هشتمش آه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یقول آمنا بالله والله آخر و ما هم بمؤمنين شریف میگه و من الناس بعضی از مردمان کسانیاند کسانی که یقول میگه آمنا بالله و بالیوم الاخر ما ایمان دارم به الله و به روز قیامت و ما هم بمؤمنین در حالی که اینها مؤمن حقیقی نیستند شما ببینن که ازد خزیفر هو یک صحابی جلیل قدر بود یک فرمول در زندگی ما مسلمان ها بر ما میتن میگه که باقی مانده اصحاب پیغمبر همیشه از نیکی ها پرسان میکردن ولی ما به وضعی که از نیکی ها پرسان بکنم با از بدی ها پرسان می کردم چرا از بدی ها پرسان میکدی میگه به خاطر ازی که آدم وقتی که ویروس نشناسه چطور میتونه که برزی آنتی ویروس پیدا بکنه آدم تا وقتی که میکروب نشناسه چطور میتونه خود از میکروب بکنه آدم وقتی که بدی رو نفهمه چطور میتونه که خود از بدی نگاه بکنه بس بدی ها وجود داره ویروس ها وجود داره میکروب ها وجود داره و به خاطر که ما از شر از اینا خدا نجات بتیم و مبتلا باونشیم از این خاطر ما مجبور هستیم که اینا را بشناسیم میگه ادب از کی هم از بی ادبا و؟ از بیادب چرا؟ ادب با میگه چیزی عمل زشت را که او کرد من نکردم به نام ما با ادب شدم چرا رو بیادب میگن خاطر که اینی کار میکنه اینی کار اینی کار ما بر از او عمل کردم به ما با ادب شدم. حالما و شما خدای عزوجل در ای آیات شریف بر ما یکی از مرزهای خطرناکی که بعضی از انسان می داشته باشند این برای بر ما نشان می که این انسان که مبتلا به این قسم امراض هستند چی اندیشه دارند و نتیجه اندیشه خودشان چی ضرری برای دیگران می رسانه و چی ضرری به خودشان می رسند شاید یک کسی تقریبا 16 هایت شریف درباره منافقین هست. ما باید منافقه بشناسیم عمل کردن منافق باشیم و ببینیم که چی صفات و چی عاداتی دارن تا ما بتانیم خدا از شر منافقین و از اینمی امراض خودا و بکنیم. خداوند متعال جل جللهو درباره منافقین میگه میگه وامین ناسی بعضی از مردم چه خشم مردمای هستند کسانی هستند که در ظاهر میگن که آمن ایمان آوردیم به کی؟ به الله و به الاخر و به روز قیامت و ما هم به مؤمنین اینا مؤمن نیستن یعنی اگر کسی در ظاهر ادعا بکنه که ما ایمان دارم ما مسلمان هستم ولی ای ایمان از ای مصداق صداق نداشته باشه ای مؤمن نیست باید اگر انسان مؤمن کی هست؟ کسی است که ایمانش دو صداق داشته باشه یکی قلب او را تصدیق بکنه و یکی اعمال او را عملا بر انسان ثابت بکنه که ای اعمال یک مسلمان است اما کسی که در ظاهر لفظ میگه که من ایمان آوردیم به الله تعالی و ایمان دارم به روز قیامت ولی که این ایمان نداره قلبن امی الفاظ که از زبانش خارج میشه به ایگرائش نداره و اعضای بدن از این امی اعمال از این نمیکنه خدای از زبانش میگه که ما هم به مؤمنین یا مؤمن نیستن دروغ میگن فریبکاری میکنن مردم به انسان منافق است که قلبش با زبانش اختلاف داشته باشه حتی در معامله انسان با خدا معامله انسان با یک انسان معامله انسان با هر کسی که باشه وقتی که ظاهر یک قسم باشه و قلبش در یک قسم باشه و انسان حقیقی نیست راستی نیست مریض است حضرت امام بخاری امی کتابایی را که شما قبلا مولوی صاحب درس داد امام بخاری کتاب ازی یعنی کتاب بهترین کتاب بعد از قرآن عزیم شان است و صحیح ترین کتاب بعد از قرآن عزیم شان صحیح بخاری است این کسی که احادیث صحیح بخاری را جمع کرد امام بخاری در جای رفت وادت داشت مثلا یک کسی برشمیف که او نه در منطقه در بصره یا در کوفه یا در مدینه منوره یا در فلانی, فلانی منطقه یک کسی است که یک حدیث پیغمبر را یاد دارم صلی الله علیه و سلم و او را روایت میکنه امام بخاری یک ما دو ما سه ما سفر میکرد چون او وقت وسایل ترانسبورتی پیشرفته امروزی وجود نداشت توسط حیوانات از حیوانات استفاده میکردند امام بخاری رحمت الله علیه میرفت دو سه ما سفر میکرد به خاطر پیدا کردن یک حدیث جای سفر کرد کدام دو ما رفته اون منطقه خبر شده بود که فلانی نفر پیشش حدیث پیغمبر است وقتی که رفت اونجا اون نفر گفت که برش گفت که به شما حدیث شریف است گفت بله امام بخاری عادت داشت وقتی که حدیث می گرفت اول وضو می کرد دورکات نماز می خواند بعد از او چارزانو می شود مقابل این شخص به بسیار ادب این حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم می شنید و باز تدوین می کرد نشته می کرد در کتاب خود در لحظه که امام بخاری مصروف نماز و مصروف اوزو بود منتظر از یه است که این نفر آماده شوم مهم آماده شوم که حدیث شریف از پیش ازی میگیرم که این نفر اسپش فرار کرده بود چطور این دوست خدا برام واسه خود چیز کرد دقت کرد که یاس بیاه اسپش فکر کرد که یاتمن دیگه ددسازی کدام چیز است ثبات اصل ما کم گرفت دوستش خالی بود امام بخاری که فحدیث طور من هم بگیرم. تو که که حیوان فریب کاری کردی مستحق حضی نیسته که ما حدیث تا رو در کتاب خود بانم یعنی ای برای ما درست که ما حتی باید با حیوانات فریب کار نباشیم بسیاری پدرها هستن اولاد خودم میگه خودش در خانه هست بچه خودم میگه که این بار دادان درازه در بگو که پدرم نیست در خانه اینال ای برای اولاد خود دروغ درس داد بر اولاد خود دروغ درس داد بنام شخصیت خود پیش از این طفل خود از بین برد و با اون نفر که ایره نبیبینه در حقیقت فریبکاری کرد به انسان راستی و حقیقی نیست از این خاطر انسان مسلمان باید قلبش و زبانش و عملش ارسیش یک قسم باشه اگر کسی کار را میکنه مخالف زبانش یا مخالف قلبش این هم انسان درست نیز در جامعه اسلامی اگر یک نفر یک سخنی رو میگه عمل، عملش برعکس از اوز باز هم ایراد خداوند تنبه میکنه لیمت قولون مال و تفعلون چرا سخنهای رو میگین که باز رو عمل نمیکنین کبور مقتن عند الله بسیار گناه بزرگ است به نزد خداوند مطال جل جلوه جل که بگوین و عمل نکنین اس انسان مسلمان حقیقی کی هست؟ انسان مسلمان حقیقی هست که سه عنصر، عنصر عنصر قلب یعنی فکر و اندیشه، عنصر زبان الفاظ و کلماتی که از زبانش خارج میشه و عنصر سیومی اعمال ازی ارسش با هم در یک خط در یک خط در حرکت باشه اگر یکیش از خط دیگه که پایین تر شد اینجا نفاق داخل میشه و منافقین بزرگترین مرسه که در جامعه هستن منافق هستن که مشکلشانی است که در زبانش یک چیز است و در قلبش چیز دیگه است از این خاطر خدای متعال بر ما میگه که بعضی از مردم ها هستن ظاهرا میگن که آمنا بالله و بالیام آخره و بلدار با مسلمان هستم ایمان آوردن با خدا ایمان آوردن با روز قیامت لیکن قلبن با خدا نیست قلبن با مسلمان ها نیست میگه من مسلمان هستم، لکن وقتی که یک برنامه اسلامی مطرح شود، چون این منافق است با او مخالفت میکنه. در ظاهر در صف نماز که اقتصاد میشه الحمدلله رب العالمین در پالیت میخونه آه چی مسلمان خوبی هستی منافق همی صفت داره ولی وقتی که یک برنامه اسلامی مطرح میشه از اقتصاد اسلامی مطرح میشه باز میگه نه نه نه نه حال اقتصاد اسلامی به درد نمیخوره چرا اقتصاد اسلامی به درد نمیخوره خاطر ازی که قلب مریض قلب مریض نمی پذیره وقتی که برش که والا درس اسلامی باید زیادتر شد باید درس اسلامی چکنه قدر زیاد درس اسلامی بخیمارا در مکتبان بخوان در وانتونان بخوان در اونجا بخوان, در بخوان؟ آه. پس معلوم میشه که قلب از این مریض از دیگه وقتی که برش که والا برادر رالخماتو مسلمان هستیم خبیه آروسی خودم مطابق احکام الهی بهش ببریم او نه اون ساده مالی که دلتان از این هم مرده خانه خنده یعنی قرآن ازش شان بر مرده است قرآن کتاب زندگی است یا کتاب مرگ است برای انسان مؤمن کتاب زندگی است برای انسان منافق کتاب مرده است که تنها در سر قبرستان با کفن پوش بده و از او استفاده بکنه اما بر انسان مؤمن حقیقی قرآن کتاب زندگی است دستور زندگی است. مسلمان که می مقانون اساسی میسازم از چی میسازی؟ و قرآن در نظر نمیگیره ای با مسلمان حقیقی نیست دیگه ای مسلمان حقیقی نشد بر زبانت حمد گویا در دلت پیدا سنم عیب کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ ظاهرا من مسلمان اسم قرآن خوش دارم 65 تا دا پوش میتم او قران جان ما چشکوده مغال خود بگی چی چیه لیکن وقتی که قانون شام نه نه نه قران اونجا بارن. باز ما قانون دیگه میرم از فرانسه قانون میرم، از امریکا قانون میرم، از ایتالیا قانون میرم. اونها باید بر من نهی دانشمندای قران شناس بر من قانون نسازن روزوکو یونگی دورو یی دیستوری فلانیدا اون نفره که قانون میسازه باید نفره باشه که مثلا از ایتالیا و کارشناس فرانسوی و ایتالیایی و ام یکویی است این علای علامت چی هست؟ ای علامت منافق است چون در زبانش یک چیز است در عملش دیگه است انسان مسلمان میگه که نه و ما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله و امرن ان يكون لهم الخياره من امرهم مسلمان حقیقی میگه که برای هیچ مرد مؤمن و برای هیچ زن مؤمن ای اختیار نیست که وقتی که خدا و رسول خدا یک فیصله کرده باشه بازی بگه نه ما این فیصله خدا را است طریق پارلمان با تصویب میکنیم تو چی کار که او را تصویب میکنیم آیا پارلمان از حکم خدا که در دا داره آیا مجلس تو از حکم خدا کرده برتریت داره که خدا فیصله کرده تا وقت حکم خدا تطبیق نمیشه که او رو تو تنفیز کنی تو برز این مهر صحت یا عدم صحته بدی ای که آدم مسلمانی که زبانش با قلب شکسانه است نمیگن از این خاطر خدای عزواجل بر ما میفامانه در صفات از این منافقین بر از میگن ببینین در کفار بسیار آیتای کم است سی کنین در باری کفار گفته ختم الله و یک آیت اینالذین کفرو یک آیت و ختم الله این دو آیت شد آیت ششم و افتم دو آیت درباره کافر گفته شده و خاطر ازی که کافر دروغ نمیگه کافر میگه ما کافر هستم کافر هستم من اینمی سیستم زندگی هست اینمی برنامه هست دروغ نمیگم مسلمان هم دروغ نمیگه کافر هم دروغ نمیگه مسلمان حقیقی هم دروغ نمیگه کافر حقیقی هم دروغ نمیگه مسلمان حقیقی هم دروغ نمیگه کافر حقیقی هم فریبکاری نمی کنه مسلمان حقیقی هم فریبکویی نمیگن کنه کی فریبکاری میکنه که ظاهرا مسلمان و باطنن کافر است یعنی میکسس نیمه کافر نیمه مسلمان ظاهرا مسلمان و باطن کافر اینه باز اصطلاح دیگه میده که اینو منافق میگن و منافق خداوند متعال من 13 آیه اوصاف از اینا توصیف تشریح میکنن خداوند باز میکه وما هم به مؤمنین ولو که اینمی انسانه که در ظاهرش با مسلمان میشینه مسلمان میگه من تر دوست دارم مسلمان میگه من مسلمان هستم مسلمان میگه من عقیده اسلامی دارم من در راه خدا میرم لیکن قلبن از خلبن از احکام و برنامه های اسلامی اظهار رضایت نمیکنم راضی نیست وازیر خداوند مطال میگه ما هم ببؤمنین ای مردم ای انسان‌ها، ها مؤمن نیست ای کسانی که شما ای صفت ها را دارین بفاهمین که شما هم به نزد خدای از و مؤمن نیست هر کسی که صفت داشت اگر مؤمن قلب و قالب شکی باید باشه قلب و قالب زبان اعضای بدن فکر اندیشه کلش اسلامی باشه ال اسلامو اما یا درک او یا خذ او یا درک اسلام یا کلش گرفته میشه یا کلش ترک میشه تجزیه نمیپذیره اسلام هیچ اندیشه انسانی باشه یا خدایی باشه تجزیه نمیپذیره من مسلمان هستم ایا مسلمان هستی لیکن اقتصاد مرکسیستی رو قبول دارم ایخ تجزیه شد خودم اینجا دلم در پیش یارم ایره اسلام نمیپذیره مسلمان هستم لکن آروسی اسلامی رو نمی پذیرم من مسلمان هستم لکن جامعه اسلامی رو نمی که اسلام در سرک و در آپارتمان و دفلانی فلانی و دفلانی فلانی فقط اسلام در داخل مسجد باشه اوکی درست است انده جستیکولار را اسلام تجزیه پذیر نیست از این خاطر کسی که قسم فکر میکنه که والا من مسلمان هستم لکن اقتصاد کمونیستی را قبول دارم ما مسلمان هستم لکن در قانون سازی سیستم دموکراسی قبول دارم که باید قانون برای مردم باید بسازن و مردم باید حق و باطل را تعیین بکنه اسلام نمیپذیره اسلام بر عقل انسان هم حق میته بر حس انسان هم حق میده و بر وحی هم حق میته لیکن هر کدام در جایش اتو نمیشه که ما اساس حلال و حرام و باطل و حق و باطل و جایز و ناجایز ایره به مردم رجعت بدیم ایره معبودان باطل تشریعی میگن کسی که در حلال و حرام، در جایز و ناجایز، در حق و باطل، به با ایواز حکم خداوند برای انسان صلاحیت میده که برش قانون بسازه، تو بر ما حقت اینکو تو بر ما باطلت اینکو تو بر ما حلالت اینکو تو بر ما حرامت اینکو تو بر ما جایزت اینکو تو بر ما ناجایزت اینکو کو، این جس کی ای انسان معبود خود قرار میده. عطا شما محصلون و شاگردای عزیزوس ریش بزرگای محترمی که در مجلس هستین، عطا کوشش کنین که در سوالتان بر ما نگوینین که استاد نظر تو در باری ی چی هست؟ نظر من چی هست؟ من چی ارزش دارم در مقابل کتاب خدا و سنت پیامبر سلام استاد والا نظر تو اگر یک نفر پس بیشش آب قرد و در ما این بارک رمزان روزان باید شد نظر شما چیست؟ خاک در نظر من من نظر ندارم در اسلام اشخاص اعتبار ندارن نگو که نظر تو چیست؟ بگو که حکم خدا و سنت رسول الله و حکم شریعت اسلامی در این قسمت چی قسمت؟ ما میگیم سهیم ما قرآن سنته که خواندیم علما و دانشمندان اسلامی با استنباط از قرآن ازیمشان میگن که اگر کسی در روزه شریعت اسلامی میگه مثل که ما فهمیدیم. نه نظر شخصی من هست چون نظر شخصی من هیچ اعتباری در مقابل قرآن و سنت نداره و اگر من مخالف قرآن و سنت گپ بزنم تمام گپ من ولا صد کتاب نشا کردم ار صد کتاب رو ببرنده در یا اینا میگیم که حکم خدا و حکم پیغمبر خدا حکم خدای عزوجل که او رو خدای عزوجل گفته و پیغمبر صلی الله علیه او رو توضیح و تشریح کرده اینا علما و مفتیها و شخصیت‌های شخصی بزرگی که حق اجتهاد دارن و ما مجتهد نیستیم مثالا تا ندارم اونا میگن که اگر کس در ماه مبارک رمضان سهوان روزه بیادش است آب گلونش تیر میشه ایره خطا میگن اشتباه میگن ایروز روزی خدا حفظ بکنه بازی یک روز قضاوی بگیره گپ گپ نه ما چیکار هستم از خاطر باید انسان ادب با خدا ادب با رسول خدا ادب با قرآن این مراعات بکنه بعضی کسا میگن والله صاد نظر شما دای چیز نظر نظر ما ارزش ندادن ما فهم خدا از قرآن میگیم اما ما که مخالف قرآن بود اچ وقت نگیم مخالف سنت بود نه حتی بزرگای مذاهب ما و شما که بسیاری کسا نمیفهمند گفت که اگر کدام اجتهاد ما کردیم و حدیث صحیح شد اجتهاد ما رو دیوال بزنه اذا صح الحديث فهو مذهبی وقتی که حدیث صحیحه پیدا کردی اینم می... مذهب است امام صاحب اعظم امام صاحب ابو حنیفه امام صاحب شافعی امام صاحب مالک امام صاحب احمد ابن انبل کلیشان گفتن اذا صحح الحدیث فهو مذهبی چون اصل قرآن است اصل سنت پیغمبر صلی است مجردی که حدیث صحیحه ثابت شود که نمی حدیث ثابت عالمی که اجتهاد کرده شاید برش و حدیث نرسیده باشه بنا ان ما تکلیفات به حدیث داریم یا به گفت شخص یکس نمی ومی قشتهاد اگر ای این حدیث بر نشه حال که بر ما ثابت شد این حدیث صحیح است بنا ان این حدیث صحیحه می و وقتی که امی حدیث پیروی می در حقیقت از امام اعظم ابو حنیفه که مجتهد بزرگ عالم بزرگوار بود پیروی کردیم دیگه چون خود ازو امی گپ میزنه خب دوست خدای عزوجل بر ما صفات منافقی میگن که چی یکی یک صفت خوب است یکی صفت بد صفت بد صفت قبیح که اینا دارن ای چی است یخادون الله والذین آمنون اینا فریب کاری میکنند با الله تعالی با اندیشی خود مطابق فکر خود که ولی ما فریب کاری میکنیم با الله و فریب کاری میکنیم با مؤمنان و ما یخداعون ایلا انفوسهم و ما یشورون خدای عزّ و چی میگه سبحان الله میگه اینا فریب نمیدهند و ما یخداعون اینا فریب نمیدهند ایلا انفوسهم مگر خدا و ماش آرن و اینها شعور ندارند خب چقدر از این درسای خوب و جالب گرفته میشن یک انسانی که در قرآن فکر بکنه ای که و شما در افغانستان میخوایم ما مینن نصف <تصفيق> من کلمات نام الله ما میلیم ما ماوی ما میلیم یخادونه ولی ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت قرآن خبر از این نازل نشدن. قرآن برای نازل شده که مثل اصحاب کرام ده آیته میگرفتن، میخواندن، حفظ میکردن، میفهمیدن، با او عمل میکردن. باز از او خوب از او خلاص میشدن باز ده آیت دیگه میگرفتن باز باز کار میکردن. اینه میگن قرآن شناسی و عمل به قران. وقتی قرآن بخوانی و در شخصیت انسان تاثیر نکنن، باران که در لطافت تبعش خلاف نیست، در دشت لاله رو یادو در شور خاص در باران که در کل دنیا یک قسم می بره در جایی که دشت خوب است زمینش خوبش است خاکش خوبش است اونجا های لالا می رویم اما در کوچای های بازار، اونجا گندگی چطلی مرداری باران اونجا غم است قرآن رحمت است به قلب که قابل پذیرش قرآن است با صداقت با اخلاص قرآن از این مطالعه می خواه اینجا قرآن از شون چی میگه صفات از یاده میگه؟ فکرتان باشه که منافقین امیشه در اندیشه شانی هست که والا والا اونو مولوی سهب او روز در دفتر من اتفریب دادمش برش گفتم که ما صد دفت تصبیح میگم که مولوی سهب ما اتو که ما اتو قرآن شریف ختم کردیم که مثلا قرآن شریف که اول الله دارم که مثلا میگرم این اندیشی منافقین است همیشه چی میگن؟ که دیگه فریب دادیم ولی تو بازیش دادیم تو در جانش زدیم که دیگه فکر کرد که ما بسیار ولی ما دیگه قسم آدم هستم خداوند مطال میگه که منافقین عادت دارن که همیشه فکر میکنن که ما مسلمان ها ما خدای عزو و مسلمان ها را فریب میتیم خداوند مطال میگه و یخ دانه الا انفوسه هم اینا فریب نمیدن مگر خدا فریب میدن خود نفس خود فریب میتن اگر تو مثلا قصه عمره ما کاری کردی یک نفر خیس بی اومد نماز خون ما رو فریب داد خدا فریب داد ما من, من راجیز بیچاره چی هستم که تو خوب بگم یا خراب بگم من خودم در روز قیامت شاید از مکه که تو مسلمان بسیار مسلمان ها وقت اونا در جنت باشه ما شاید در پول صراط هنوز بند مونده باشیم در گناه های خود آدخم جوان خودم هستیم خدا نجات داده نمیتانیم تو اومدی مثلا کتما من منافقت کت من یا کتما چهار نفر مسلمان آجیز پیچه را زیب منافقت کردی و یا را فریب دادی این در حقیقت انسان خودش خود فریب میتن خود بازی میتن به خاطر ازی که خود به حلاکت میبرده تو که فریب کاری میکنی خودت شخصیت خود در پیش خود از دست میتی خودت, خودت به شخصیت هستی. انسان مؤمن که شخصیت خودش پیش خودش شخصیت واقعی و حقیقی باشه اما یک نفر که خودش پیش خود دروغگو است پیش خود فریبکار است ما ولا پیش دیگه این ای خود فریب داد از این خاطر خداوند مطال جل جلاله جل میگه که و ما یا شعور ندارن اه شعور ندارن شعور چی است میگه والا شعور که است امی حیوانات شعور دارن چه قسم شعور داره؟ مثلا شعور داره ادعقل اینمی حیوان به اساس شعور خود می که ما باید با جنس مخالف خود جنس هم تا که تولید نسل بکنم این شعور رو داره مادر خوده؟ مادر خودن یعنی چوچگک کشنازه حتکری زامے بوزها را بیاره براگر کارو کلا میده هر بره میره پیشه مادر خود از چی از شعور خود یک وقتی یک کسی تخمکای مرغوی را در زیر مرغ مانده بودن، همین تخموی مرغوی با اساس شعوری که خداون بر از اینا دادن یکلشون میامدن همین داباین لگن او خدا من داختن مادر شو بهفلا کردن نکردن کی مرغ بود نه مادرش اما چچایکا تخموی مرغوی بود ایسا اونها به اساس شعور خود خدا در عوام انداختن اما مادرش میبینم نه پردین نه پردین نه پردین مقال انداخته بود اما چه ها که مرغوی به اساس شعور خود میفون که من خداوند قابل چی پو ساخته قابل آبازی بسیاری وقتا اگر یک هیوان جنایت کنه به اساس شعور خود میفهمه که من جنایت کردیم دیگه شما اگر یک تو که گوشته در خانیتان یک پشکک هست یا یک پشک مثلا از خانه همسای آمد در خانی شما بعد استخدار گرفتین گوشته پرش ماندین دیگه پشوجان بقی گوشته می خرار در پالیت ششته تنبک خودم شورک می ده گوشته می خرار امین پشک اگر کدام وقتی گوشته دوزیم کنه گوشت پیش است یک دفعه پشک عمله کرده میگوشت دوزی کرده باز میگروزه چرا میفهم که من جنایت کردم دوزی کرده دوزی کردم اینال انسان که خداوند اشرف المخلوقات ساخته بر علاوه که انسان شعور داره خداوند مطال جل جلو بر انسان یک کرامت دیگه هم داده که عقل داره عقل داره اینالی انسان که با وجود اقل و با وجود دانش خود شراب میخوره و اقل خود از دست میتن امی حیوان برش میگه که من خواهد اقل ندارم که خرابی میکنم تو اقلت و واسطه شراب دست دادی پس تو از ما هم کده پستر استی دیگه تو شراب خور ما اگر جنایت کنیم خجالت میکشیم تو شراب خور دورش سرک پیش ری مردم شراب میخوری دوو میزنی دشنام میدی خجالت نمیکشی پس تو از ما هم کده پست هستی تو میشور ما را هم نداری رشوت خور سرعت لق لق سال میکنه رشوت میگیره اگه شعور پشکام می داشند یعنی کل چشمای خود ها پت باز رشوت ها می گرفت می شرمیدن که جنایت کرده ولی نمی شرمد پس ازی خاطر این انسان ها می تنها که نتنها عقل خود ازدرس دادن اتا ام شعور ده که حیوانات دارن امی شعور همی همهی انسان منافق انسان منافق اگر ام شعور حیوانی را هم می داشت می فامید که خدای از من را چی چی پای من رو برای عزیب بیدا که من باید در جامعه فریبکاری بکنم حیوانات فریبکاری کاری نمیکنن. سک که در دروازه هست شعور دارن اگر دوست داشت بر دنبک میزنه. اگر بدش آمدی سرت غوغو می کاری فریبکاری که اول بر دنبک بزنن بزنه باز که تو پیشش بی باز سرت عمله کنن میکنه این کاره؟ نمیکنه پس تو چه تو, تو خلفی اول دنبک میزنی و فریب میدی و پیشروش ظاهری میگینی که تو دوست منستی و تو را دوست دارم و تو فلان هستی باز در غیابش برایش میگنی به معنی انسانه که در ظاهر یک قسم است و در باطن دیگه قسم است حتی ام شعور حیوانی را هم نداره خاطر خدای ازدوجل چی میگه میگه و ما یشورون اونقدر انسان منافق خدا پس ساخته که عقل خدا خو از داده اندیشه خود از, داده. خود از داده فکر خدا از دادن این امتیاز بزرگ کآمت که خدای از دوواژل برازیک دادن این اشرف مخلوقات ساختن این عظ دادن در پوی ازی حتی شور حیوانی را هم ندارم. حتی این انسان منافق شعور حیوانی را هم نداره که عد عقل مثل اونم حیوانه حیوانی که ظاهر و باطنش یک چیز اگر کسی را دوست داشت برش می که دوست دارم و اگر کسی را بد می, می فهمانه برش بدممه از این خاطر میگه ومای شعورون اینا شعور ندارم واضح است انشالایی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون فی قلوبهم در دلهایشان مرضی در قلبهایشان مرض است فزادهم الله مرضا خداوند متعال جل جلاله جل به اساس اجنایتهایشان انوز مرضهایشان را زیاد میسازد هم عذاب و علیمون به مکان و عزیبون بر از اینا خدای از زواجل ذااب دردناکررمتر علیم درتننااد بیبی بیشتری کسایی که قرآن شریفه میخوان و مخرجی حروف و مراات نمیکنن علیم که سفت خداوندست او را یم میگن. یعنی ما و شما باید این مسجد خو، یک کورس تجوید جور کنیم یک کس نامت که استاد بیان باید از این درست که ختم میشه ساتی یازدونیم تا به بیکار استیم یک نیم نیم سات یک کورس تجوید هم جور بکنیم ادقال همین قرآن شریف خوندن ما خود درست شده قاری صاحب تو هم کمک بکن عالم به مانای بسیار عالم حلیم به معنای بسیار بردبار و علیم به بسیار درتناک. پس مان او کسی که عین و حی و امض با هم فرق نمیکنه کلش عیم علیم علیم, علیم میگه غلطی غلطتی می مینمه وقتی که دماناش غلطی آمد نمازش خدا قبول میکنه پس انسان مسلمان ادی اخل باید خورآ نظیم شانه بسیار ساده است به خدا جوانه بسیار ساده است تو بیا نز جان اینجا این ما بسیاری جوانایی که خوب اتا معاصل پانتون هم است که برش میگیم هی بگو حی گفتا نمیتونه اما یک و که خورده که یک روز برش درست تو بگو حی حی متوجه هستین باز بگو حی اما ما بسیاری کسا ریدهیم که جوان از 25 ساله باش بگو حی میگه حی اناس بگو عین عین باز بگو عین بگو زال زال بگو, زا. زا. بگو, بگو, ثواب. ثواب. بگو عالم عالم بگو یعنی یک تفلت یاد میگیره ما چرا؟ ریش ما سفید میشه تارای سفید سفید میهه و ما عین و حیر نیفهیم و میگه من قرآن ختم کردم و نمیتونیم آیا از ما کده ای طفل خرد ای طفل خرد از ما کده انجریش خوبشه است خدا انجری تو انجری طلاعی است لکن از طلاع که استفاده نکنی در کسافت دانی به ارزش میشه دیگه خدای عزیز و جل بزرگتای نعمت رو تو دادن خب این کم کم در زندگی خود چی بیاریم تغییر بیاریم خدا مخارج حروف هست اگر یک نفر کار کنه در هفته ات تو گب بزنی که خوب مولوی سایبا مثل تو ما مخارج حروف گفتن هست اگر یک هفته نیم نیم ساعت بعد از این ختم دست یک برنامه در اون کنج مزید بگیری یک تخته و تباشیر اونجا باشه یک تخته و یک بارکر یک تخته صفیه مارکر باشه یکی از قاری سایبه هم کاری کنه باور بکنید در دو ماه ات قرآن خان خوب که کنم و من الناس من يقول و من بالله و باليوم الاخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین الا و ما باز که مانای قرآن خواندی لفظش خوبش خواندی باز دگر روز کم کم خدا برد توفیق میتک که شبه فامید وقتی که مانای قرآن فامید باز من یک مسلمان کامل باز اگر تو بایی جوانی و زیباییت قرآن درست بخوانی در روز قیامت بر خدای عز و جل بخوانم و قسمه که تو میخواندی در دنیا افتخار تمام اهل آخرت میشی خب منافقین چه عادت داشتن؟ فی قلوبهم مرادان اینا مرز قلبی دارن مرز روانی دارن منافق مریض است چی مرز داره؟ یکی مرز اجتماعی است یکی مرز جسمیست که اناتومی و فیزیولوژی وجود انسان مختل میشه چشم سیستمش که مختل شد درستی ده نمیتونه قلب سیستمش مختل شد درست کار کرده نمیتونه میده سیستمش مختل شد درست هضم کرده نمیتونه یکی مرض روانیست مرض داخلیست مرض فکریست قلبش مریض است چطور قلب مریض میشن؟ بگه هر گناهی که انسان میکنه یک نقطه سیاه قلب انسان قلب معنوی انسان پاک صفید خدای از و ذات رحمان رحیم است قلب انسان رو پاک صفا خلق کرده با هر گناه با هر تعصب با هر قوم پرستی با هر جناهیت یک داغ سیاه سیاه سیاه سیاه بلاخره قلب مریض میشه دیگه منافقین غالبا مریض هستن از دیدگاه اندیشه مریض است سیستمش درست کار نمیکنه در ظاهر به جرئت بسیار گپای خوب خوب و شیرین ترین میزنه و در باطن چیز دیگه فکر میکنه از این خاطر در جامعه مریض است اوتن مریض است که از هیچ کس خوشش نمیاد درمی که چون رو سعی کنم آه که در گیری میامدی که خوافقت میکدم بدش میگی آه خیلونگی داری ها بسیار بده میایی آه خیلونگی داری ها بسیار بده می آه که چطور است از این خاطر کل زندگیش چی تیر شده دمرست شده چون مریض است که در سیستمش تزلزل وجود داشته باشه اندیشه مستقیم نداشته باشه کافر صراحتاً میگه من کافر استم مسلمان میگه من صراحتاً مسلمان استم منافق چیست؟ مریض است ظاهرش یک چیز است؟ باطنش جگه چیز است چشمایش یک سعی کنید فکر میگیدیم آن چقدر مقبول است اما چشمایش از داخل دید و درست نداره مریض است ظاهرش اگه سائل کنی خوب خوبه مت چاق است اما وقتی که پرساد پرسامش کنی میگم والله صاحب فشار خون دارم تکلیف قلب دارم شکرده مریضه خلاص او منافق چه قسم است منافقم ظاهرا که سائل کنی بسیار خوشت می آ بسیار شیرین زبان است منافق بسیار چاپالوس می واشن بسیار ش... به خاطر که مردم فریب بده بسیار دوست دارم بسیار عزیزم است که يا خدا ده, ده خدا که خوب خوب والله خوب... منافق است اینال این منافق چه داره؟ میگه مریض است خدای از زوجل میگه و ازی که مریض است و میفهمه که مریض هستم و میخواد که خدا و پیغمبر خدا و مسلمان ها رفره بته خداوند متعال جزای ازی مریض شمید انوز هم مریضی از زیاد میکنه ازی خاطر بزرگترین مرز مرز تشویش روانی است و من اعرد عن ذکری فا این له معیشتا دانکا خدای عزوجل میگه کسی که از یاد ما سر بارد باز بدن بازبر زندگی بسیار سخته نصیب زندگی سخت نصیب میگونم این زندگی سخت نصیبی که است نصیب منافق است یحسبون کل صیحه علیهم ان قگفتم که شوا اگر در استاد ما تو خمره میگفتی حالا مگه اینا من را نگرفتم مقصودن کل چی سر کردم درس و کلا گیتاش کردم نه ولی گپات کلش تو ما متوجه ما بود به خیال ما هم خود تو خی منافق هستی خود خی خائن تو بود خوب شد که گفتی این تو مقصد ما بودم و میگه گپته بر ما گفتی ازی خاطر یحسبون کل صحیحتن علیهم هر طوفانی که می فکر میکنید طوفان تا کلمه است هر گپی که میزنی میگه بخیون رساسل ما کرد اوی با خیلی مردم میگن در ولی که ما ولی که خوب فهم با خیلی مقایسه نداریم که کیروزس انسان منافق و مسلمان حقیقی که است و خود انسان میفهم که من منافق قسم یانه نیستم خودش میفهم که من از این خاطر میگه خداوند متعال جل جللهو بزرگترین جزای که بر زیمیت مرض شانوز هم زیاد میکنه از این خاطر در جامعه انسانی زندگی میکنه لکن اطمینان نداره آرامش نداره دشمن دشمن دشمن رام دشمن خود فکر میکنه منم دشمن خود فکر میکنه حاجی هم دشمن خود فکر میکنه اونم دشمن خود فکر میکنه ایمال جان هم دشمن خود فکر میکنه کلگیرا دشمن خود فکر میکنه از این خاطر همیشه در تشفیش است آرامش نداره اما مؤمن حقیقی چی هست یا نفس النفس نه؟ ای انسان ای کسی که نفس تو به نفس مطمئن مبدل بدل شده توسط چی؟ توسط قوت ایمان ارجع الى رب بکی راضیتا مردیه برو به پروردگارت رجوع بکن در روز قیامت برش گفته میشه چون در دنیا راضی و مرضی بودی یعنی راضی بودی از خداوند متعال و خداوند هم از تو راضی بود آره در روز قیامت هم هیچ جگر خونی نکو خداوند متعال برش میگه که یا ایت پشیپار وارده گاره خدا از تو راضیست تو از خدا راضی هستی این خاطر انسان مسلمان اولاد که علاوه دام من ربهم و اولادی که هم المفلحون در زندگی دنیا خط مسیرش معلوم از در راه راز در حرکت است راهی ثابت است خوش است. این اینی راهی مس نیستی معلوم دار است مسلمان دانو قلب و زوار عملش یک قسم است اینمی خاتمه است اینمی راهی است ما در حرکت میگن و در آخرت این انسان چه قسم است در دنیا خط کریش مالوب است و در آخرت هم اولای که هم المفلحون است از جملی رستگاران است چرا که خدای عزواجل برش میگی یا ایتو هن نفس المطمئن نه ای نفس با اتمینان ارجع الارب بکی رجوع بکن با پروردگارت راضیتن در حال که تو از خدا راضی هستی و مرضیتن و خدا همتر راضی ساخته. اصلاً مطمئنند شبش هیچ چیز ندارن ولی احساس میکنن که همه چیزو دارن مسلمان حقیقی هیچ چیز ندارن ولی اطمینان قلبی داره فکر میکنه که کلش از من است ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تنانه برای انسان نفس مطمئنه تنانه و کفاری و به غفلت نخوری همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار می فکر میکنه انسانه که با نفس مطمئنه است که آفتاب مزدور مذور است ماه تا و مذور است زمینم مذور است تمام چیزایی که در طبیعت از کلش اکسیژن و هیدروژن و کربن کلش در خدمت من هست از این خاطر من در خدمت ذات جلال هستم سجده می کنم و میگم سبحان ربی العلی پاک است ذاتی که منزلت بسیار عالی داره سبحان ربی عظیم سر خود خم میکنه و پروردگار خود و میگه که پاک است ذات با عزمت و به هیچ کس دیگه سر خود خم نمیکنه به هیچ کس چاپالوسی نمیکنه انسان منافق رو... کجا رفت هم؟ با ملاقات ملاقات رو میگن نفرش تو کمره یعنی کمر خدا رفت بهش یک نفر قات کرد با ملاقات فلانی رفتیم واضی برمان هر رزا ملاقاتش میریم ملاقات خدا برش قات کرده میریم انسان مسلمان ثابت هست نشناسیش اینمی راهم هست اینمی حرکتم هست اینمی قوارم هست اینمی حالتم هست هم مچید خداوند مطال در خدمت مد... اما من مزدور ساختم و من مزدور هیچ کسی دیگه نیستم الحمد لله رب العالمین حمد و سناسفت توصیف کردن و متحک گفتن و ناد خواندن و شعر گفتن و قصیده خواندن برای هیچ کسی دیگه نیست اوزو گلقی غلامیت خدا عزباجل گفت فقط حمد رب العالمینه بگو. رحمان رحیم است مالک یوم الدین است دیگر کسایی که درست قدرت داره و در روز دیگه نداره برزی سرت خم نکو از این خاطر انسان مسلمان نفسش مطمئن است اما منافق اعتمینان ندارد چرا؟ قلبش مریض است نه خودش از خود راضی است نه از خدا از او رازی است نه جامعه از او رازی است کت کلگی کل در فریب و در غلطی و به است. از این خاطر فزاده هم الله مراد مرد و خداوند بگه انوز بی اطمینانی تو مرزتان تو که کت ما همه نعمتها را برای دادم تو باز سرکشی میکنی و کتما فریبکاری میکنی و بفکرت که من خدا را فریب و پیغمبر را فریب میتوم و مسلمان ها را فریب میتوم خدای عزواجل انوز هم مرضش را زیاد میکنن و این انوز هم در قهقره انوز هم غطور ای خود در دنیا اقسم به اتمینانی وله هم ما فکر داشته باش که تو منافق در زندگی که اقسم خور خوار استی و زلیل استی و با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج و کلی گیب تو کج را بیشی میگنی؟ آیاتی در آخرت نجات پیدا میکنی مگن؟ ولهم عذاب آلیم بمکان و یکذبون خداوند متعال جل در روز قیامت هم اینا مستحق عذاب بسیار درتند به خاطر دروغیشان که اینها دروغ میگفتن همیشه هر کس فریب میدادن و حتی فکر میکنند که ما خدا را فریب میدیم الله عزیز بله ما انسانها را فریب میدیم ما ملاکها را فریب میدیم ما پیغمبر را فریب میدیم صفات دیگه زشت منافقین چیست؟ است؟ صفات زشت دیگه چیست که و اذا قيل لهم لا تفسدوا في وقتی که ببینیش که با وجود ازی که ادعای ایمان و اعمال صالحه میکنه فساد میکنه در آروسی رقاصه هاست سازنده هاست سرکارش در محفلش کلش گناه هست 24 سال سر کارش با فیلم‌های ایندیست سر و کارش با, با زن سر و کارش با قاتلین است ارتباطش با مردم بساس فساد است دروغ است ایر فریب بده اینو فریب بده خانه از زیر بگی زمینی از زیر سرش بکن بکو اینو دشنام بده کتا زور مسخره کو سر و زورش خند بزن پس میگه که تو خب من مسلمان هستم پس تو باید زندگیت امیخست میگم من مسلمان هستم خیده آروسی تو کارایی را که تو میکنی ای که تو میزنی ای رقاسهایی را که تو آوردی ای زندگی که تو آوردی ای خانمه تا که تو آرایش میکنی به اشکال مختلف در معذر رسه نمایش مردان نامحرم قرار میتی با عقیده و فکر و اندیشه تو درست اسختو خوردچی میکنین وقتی که بوی که ایذقیل اللهم لا تو لفاسات کاری ها را در جامعه نکنین در جامعه صفا زندگی بکن در آروسی 400 نفر را ده خدا مبتلا نکو یک چهار نفر عالمه بخوای یک چهار نفر جوانی را که بیای بر ترانه اسلامی بخوای بخوان یک چهار نفر جوانی مسلمان هنرمند بخوای که با چگون پارچی تمثیلی اسلامی را چیز کنه یک مسابقه اسلامی باشه صحبت اسلامی باشه نکایت به طریق انجام من راسم تا به طریق شرعی انجام بده اینجا ویزاقی ای فساد کاری نکن قال باز چی میگن اینما نحنو مصلحون ما نه تنها کسی که یکی صالح هست صالح هست و که مصلح هست فرق بین صالح و مصلح جی هست صالح که خود انسان خوب آدم باشه و مصلح است که باز بخواهی که دیگرها اصلاح بکنم من خوب آدم هستم من اتا میخواهیم که دیگرها اصلاح بسنم باز این منافقی نمیه که انما نحن صالحون ما مردم های خوب هسته میگن نه ما مسلح هستیم. ما یه تلویزیون به یه سیستم که ساختیم، ما یه رقاصه ها را که آوردیم ما یه جنایت را که میکنیم ما یه دروازه های زندانه که باز کردیم ما که یه عرضی خود رقاصه ها را میاریم ما که این قسم گنار فحشا را نشر می‌کنیم، بازی همه که کل چیست خوب است چون انسان مسلمان انسان مسلمان حق خوش داره باطل بدش میه. ولی ولیکن قلبی که در اونجا شیطان تصرف پیدا کرد بازی رو تغییر میتن شیطانی انسی کی هست همیشه مایی رو گفتیم که شیطانی انسانی است که تحت تاثیر شیطان قلب خود قرار داده آلو به شیطان انسانی مبدل شده از این خاطر کار زشت برش خوب مانون میشه کار خوب برش زشت معلوم میشه حق برش باطل معلوم میشه باطل برش حق از این خاطر بازی ها ادعا میکنه چون باطل حق میبینه میگه انما نحنو مصلحون ما مردم تو هستیم که در جامعه اصلاح را به خدمت مردم هستیم را لوده بازار جور میکنیم را لوده میسازیم اخو کار بسیار خوب است ما لوده ها را معرفی میکنیم ما چکه ها را معرفی میکنیم ما رقازا تربیت میکنیم گلبرگ ها را تربیت میکنیم جامعه برای قاست ضرورت نداره بلوچک ضرورت نداره که های خماره جور میکنیم یا خبه نفع جامعه است تجارت پیش میبنه امکانات ها خوب میسازه این خاطر انسان منافق باز وقتی که برشان گفته شود برش جویم که و اذاقی لا لهم لا تفسدوا فی الارض او برادر ای فسادکاری لر نکو این ملت محروم ما که بیچاره یک مرتبه شو ها سر از تجاوز کردن و این کشور یک قرن به عقب بردن و حال امریکایی ها تجاوز کردن یک قرن دیگه اینا ایرا به عقب انداختن اولادای ما را کشتن های مسکینه در بین قنداق دوت اونه اون یک افت پیش کشتن داشندن بمبارد میکنن مثلا دیشب جوان پیر طفل نمیرند میخانه بسته قریه رو زنده بمبارد کردن های زونا رو از بین بردن وقتی که باشون میگن شما چرا ده این فساد کاری سهم میگیرین و اینارتش تشویخ میکنین و برای ها میگن که حالا شما خوب مردم هستین خوب کارا را میکنین و شما انوزه هم در های استعماری و استعماری که مردم از انسانیت میکشات جوانار از درس و از تعلیم میمانه سوی علمی را از وقتی که شما دانشمند و متخصیصین تعلیم و طریبه را پرسان کنید که میگن از وقت که ای سریال ها و ای برنامه های تلویزیونی زیاد شدن سطح تعلیم و طریبه 50 فیصد پایین رفتن وقتی که بارش بوی که اینی کارایزش را نکن باز واسمه انما نحنو مسلحون ما بسیار اصلاح کار هستیم اونمون منافقی که در زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و بود اونمون صفاتی که منافق داشت چون این کلام خدای عزوجل است عین صفات منافقین امروز هم در جامعه ما تو دیده میشن من تا اون وقتی اکمه که به شکل عقب مانده و سر منافق سر خر و سر شطور و از سر و بود امروز اونم منافق در موتر و در والگاه و, دا تایار دا تایار و دا دا دا چیز فقط وسایل تغییر کرد. اما اندیشه منافقانی از اونا هر وقت امی اندیشه بود و حال هم اس اون فساد کاری میکردن میگفتن ما اصلاح میکنیم و امروز هم فساد میکنن و میگه که انما نحن مسلمون وقتی کتش بخیزی برد یک ساعت گپ میزن و بگه چرا که ما اصلاح نمیکنم این کارهای اصلاحی نیست این برنامه رو باید نباشه ای ما چی بکنیم خیل نباشه و نباشه و این نباشه، گویم که خو یگان تا با شاعراش میگه که گویم که در خوردن می حرام است آن چیزی که در این شهر حلال است کدام است میگی شراب حرام است، زنا حرام است، دوزی حرام است، فریبگری حرام است، ای حرام است، خچی حلال است، ای با آداب منافقین است، بازی استدلال میکنند، خدیگه، ای دیگه ما دیگر خراب ما تو بیشیم، خدیگه خراب دست اختر با استفاده کنیم، آداب منافقین است، نهیم ما مسلمون استیم، ما مردماییم که برالا این نهوم هم المفسدون باس خدای از زوجال، الا آداب تنبه میگن، خداوند انسان تنبه میکند، be careful، در انگلیسی که میگه خب ایتیاد کو، ما جی باش آگاه باش این هم حمول این است برای مولوی سای با که گان چیزهایی نحوی هم بگویم که باز نگوید که ما خسته شدیم ال ادات که انسان آگاه میشه الا آگاه باشید. به باید چه قسم بامات باید بخونی خب بذار آگا باشین این این نه عدات توقید است بسیار دقیق است باز توقیدش میکنه. این باز این زمیر توسط زمیر دیگه توقید میشه هم المفسدون این هم هم المفسدون ولا کلا ی شعرون باقا باشون که این مردم های منافق مفسد هستند در جامعه فساد بخش میکنن میارهای زنار، شراب، فساد، فتنه را جهالت بیدانشی را بسیار زیاد میکنند و جامعه عرب به سوی حلاکت میکشن، ولیکن کل شعورون لیکن اینا خدا شرمنده، از عقل خود خود استفاده نمیکنند حتی امو شعور حیوانی که اگر یک حیوان یک فسادی را در جامعه بکنه احساس میکنه که ما فساد کردیم احساس فساد میکنه که ما فساد در جامعه کردیم از این خاطر اونم حیوان خجالت میکشن ولی این با وجود از این هم خجالت نمیکشن کشن ان شاء الله باقی مانده شن ده افتای آینده میخونیم سبحان ربک رب العزت یا, یا سیفون افتای آینده نه هفته های آینده که باز درس قران شناسی ما شده خیم سبحان ربک رب العزت یا, یا سیفون و سلامٌ علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دعا میکنیم اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم خداونده نورانی بگردن قلبهای مارا با قرآن عظیمشان وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم پروردگارا قلبهای را مزین بساز با زینت قرآن عظیمشان و ادخلن الجنة بالقرآن العظیم و خدایا به اساس عمل کرد به ای قرآن عظیمشان که ما به ای عمل بکنیم خدای ما را داخل جنت بگردان و نجینا من النار به قرآن العظیم خدای با عمل کرد به احکام قرآن عظیمشان ای اعمال ما را سبب نجات ما از آتش دوزخ بگردان اللهم جل القرآن لنا فی الدنیا قرینا خدایا قرآن ازیم و دوست و همسفر و همراه ما در قرآن بگردن در زندگی بگردن اللهم جل قرآن لنا في الدنیا قرینا و في القبر مونسا و خدایا مونس ما همراه ما در قبر قرآن مونس ما بگردان، اللهم جل القرآن لنا في الدنيا قرينة و في القبر مونسا و في الجنة رفیق خدايا الرفيق جنت ما قرآن زمشانا بگردن و من النار ستره و حجابا و خدایا این قرآن سپر و حجاب بگردن در مقابل آتش دوزخ که از ما دفاع بکنه و معنی رفتن ما به دوزخ شوه اللهم ذکرنا منهما نسينا خدایا چیزی را که از قرآن فراموش کردیم یاد ما بتیم اللهم ذکرنا منهما نسینا و علمنا منهما جهلنا و خدایا برما یاد بیتی چیزی ازور که و هنوز جاهل استیم ورزقنا تلاوته و خدایا برما توفیق بتیم که ما تلاوت بکنیم قرآن ازیم و شان اللیل و آنا النهار در ساعت ها و لحظات روز و ساعت ها و لحظات از شب آنها النهار و آنها لیل ال... و آنها النهار واجعله لنا حجتن يا رب العالمين خدایا بر ما قرآن عزیمشان حجت و دلیل بگردن و پر آخرین جمله که از زبان ما خارج میشه در آخرین لحظه از زندگی ما که امون لحظه عزرت اسرائيل علیه سلام وازده جان مامیه و وقت جان کندن ماس خدایا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم